درخت دوستی بینشان که کام دل به بار آرد نحال دشمنی برکن که رنج بی شما را رد. چون مهمان خراباتی به عزت باش بارندان که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد شب صحبت قنیمتان که بعد از روزگار ما، بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد اما ریدار لیلی را که مهد ماه در حکمه است خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال چون صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد خدا را چون دل ریشم قراری بست با ظلفت بفرما لعل نوشین را که زودش با قرار آرد در این باغ از خدا خواهد دگر پیران سرحافظ بر برنب جویی و سروی در کنار آرد در این باغ ار خدا خواهد دگر پیران سرها و فض نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرت.